انسان <سؤال> وقتی مشغول بشه به اشک مجازی <سؤال> هشتم داره جلسال علمی فکری و اصلاحی سال 1400 سخنرانی مولانا عبدالحکیم سیدزاده موضوع اشک مجازی اجرا و ضبط مرکز علم قرآن یا سلام اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و اشهد ان محمد عبده و رسوله صلى الله عليه وعلى آله واصحابه اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك اللهم صل عليه انزله المقعد المقرب عندك اللهم صل عليه بعدد كل معلوم لك اما بعد گزار و شکر گزار الله سبحانه و تعالی هستیم که به ما شما توفیق داد در این مسجد مکان مقدس جمع بشویم این لطف و کرم الله سبحانه و تعالی یک یہ قدم اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے ہیں این قدموں رو الله سبحانه و توفیق عنایت فرموده است تقدیر و تشکر میکنیم از کل مجموعه علوم قرآنی جناب مولانا خالندر حافظ عبدالرحمن حافظ محمد ساق، و مفتی عبدالرب و همه علمای شهر و جوانان بزرگوار رشته فیدان جناب حضی عبدالله و سایر بزرگان جوانان عزیز فرهنگیان دانشجویان که در این جلسه حضور دارین استفاده کردیم از سخنان عزیز بزرگوار من جناب مفتی عبدالرحمن و مرزی الله سبحانه و تعالی بر توفیقات همه ما شما در این فرصت کوتاه امروز من مطلبی خواندم با طلاب در مدرسه گشت گفتم همین مطلب مناسبه که اینجا تو این جلسه هم بازگویی بشود کتابی هست نام از امام ابن قیم رحمت الله علیه به نام اداؤ و ادوا مرز و دارو امراض معاصی رو بیان فرموده است و بعد رو بیان فرموده و یکی از امراضی که ابن قیم رحمه الله تو این کتاب ذکر کرده بیماری عشق است عشق مجازی، عشق ناپاک گفتم شاید این مناسب باشه برای این جلسه عشق پاک داریم و عشق ناپاک داریم از این عشقای ناپاک قرآن مجید صحبت فرموده است اشک به زنا عشق به همجنسگرایی هر دو مورد در قرآن مجید ذکر شده ان. اولی عشق زنه ها به یوسف علیه السلام هست قرآن مجید مفصل در این مورد صحبت کرده و دیگر عشق همجنسگرایی هست این مسئله هم مفصل در سوره های مختلف بیان شده است چون تاریخ فکران امروز به این هم جنسگرایی رسمیت دادن در غرب اروپا از این جهت قرآن مجید مفصل در این زمینه صحبت فرموده و در آخر انشاءالله اون عشق اشک حقیقی عشقی که حل همه مشکلات هست در آخر انشاءالله به توفیق الله اشاره خواهیم کرد جوانان عزیز الله سبحانه و تعالی در قرآن از عشق زلح صحبت فرموده است و از افت و یوسف علیه السلام همه انگیزه های این زنا موجود بودند همه انگیزه های اشک مجازی موجود بودند ولی یوسف علیه السلام با این همه فشارها انگیزه ها مقابله می کند افت رو ترجیح میدهد. عشق حقیقی داره از عشق مجازی محفوظ میماند. همه این دوائی انگیزه های زنا موجودن اول اینکه تمایل مرد بزن در فطرت انسان است زگین لیلناس حب و شخوات منان اولین مرغوب انسان تمایل به است انسان همون تمایل و به داره که تشنه تمایل به آب دارد گرسنه تمایل به نان دارد حتی میشه بر گرسنگی و تشنگی صبر کرد ولی از عشق مجازی تمایل و گرایش به نمیشه صبر کرد دوم اینکه یوسف علیه السلام جوان هست شهوت جوان خیلی تیز و خیلی قوی هست سوم این که یوسف علیه السلام جوان بود زن نداشت کنیز نداشت که این شهوتش بشکند و آرام بشود چهارم این که یوسف علیه السلام در کشور غربت است از کنعان آمده است از شام آمده است به مصر لهذا انسان غریبه زیاد پایبند آداب و اخلاق نمیشه پنجم اینکه این زن صاحب منصب و جمال بود همه اینا میطلبید اینکه یوسف پاسخ بدهد به این عشق مجازی ششم اینکه اون زن خودداری نمی کرد انکار نمی کرد بعضی عشق مجازی دارند ولی طرف مقابل همراهی نمی کند این عشق سرد می شه، خاموش می شود ششم این که هفتم این که اون زن طلبگار بود طلبگار اشک مجازی بود تمام کوشش خودشو کرد هشتم این که یوسف علی السلام در منزل این زن بود زیر سلطه این زن بود و می ترسید یوسف علیه السلام که اگر اطاعت نکند تهدید می کند هم انگیزه های رغبت و هم اون انگیزه تهدید موجود بودند نهم اینکه که یوسف علیه السلام از این خاف نداشت که کسی سخنچینی می و این راز و پاش میکند ها کب شده بودند رقیبان موجود نبودند دهم ده اینکه یوسف علیه السلام به ظاهر غلام ها هست همیشه میره میآید جای انکاری نیست کسی مشکوک نمیشه این جوان چرا اینجا رفت و آمد میکند و یازده اینکه این زن خیلی مکر کرد، خیلی حیله کرد زنای دیگر رو تلبید که یوسفو تحریک بکنند پیش اونان شکایت برد اونا هم تحریک کردند توطعه کردند یوسف علیه السلام دعا کرد و ایلا تصرف عنی کیده هن اصب ایلیهن و من الجاهیلین خدایا این مکر زنان بارخر است اگر تو کمک نکنی مرو از اینا منصرف نکنی من از جاهلان میشوم آنچه چی... که از یک آدمی برمیآید از من برمیآید دوازده اینکه تهدید شد به زندان و این نوعی اکراه هست نوعی اجبار هست اهرم فشار هست ولی با وجود آن یوسف علیه السلام خودداری می سیزدهم هم این که شوهر این زن عزیز میست چندان حساس نیست به زنا اون غیرت زیادی نداره اون نخوتو ندارد زیاد حساس نیست مثل الان که تو اروپا زیاد حساس نیستن تو این کلان شهرها نیاز به زیاد به عفت و ناموس و این چیزا حساس نیستند مثل هم به همین شکل بود ولی یوسف علیه السلام با این همه انگیزه ها همه فشارها رضای الله خوف الله رو ترجیح داد قال رب سجن احب الی مما يدعونني الیه خدایا من زندان و ترجیح میدن از این فراخان این زنان در قصه یوسف علیه السلام هزاران فایده هست هزاران فواید است که فرصت ایجاب نمیکند عشق دومی که در قرآن مجید ذکر شده است اون عشق همجنسگرایی هست بچه بازی هست این تایفه دوم که این عشق دارند قرآن مجید هم از اونا یاد کرده است لعمرو که لفی سکرتیم یعماهون این هم تو یک نشان هم جنس بازی هم جنس گرائی، این هم تو یک نشه هستند اینا این هم نوی عشق هست عشق به شکل هست اینا بیماریایی هستند بی علاج هستند. ولی در شریعت علاجشون هست بیماری های خطرناک هستند که بسیاری از جوانان متاسفانه مبتلا هستند به این اشکاها و گاهی این اشکا سبب کفر میشوند سبب بیزاری از الله صبحانه و تعالی می شوند. این قصه مشهور است که یک شخصی معذینی بود لحاظ دختر مسیحی رو دید آشکش شد و این نقشه دشمن هست در طول تاریخ دشمن می خواهد. الان هم همین جوری هست دشمن می که دانشجوی ما فرهنگی ما ملای ما عالم ما مبتلا بیشه به عشق مجازی لحاظ دخترانی زنانی رو با یک نقشه بسیار عمیق، گسترده فراگیر اینا رو مسئولیت میدن که شما زنگ بزنید جز بکنید در نتیجه نخبگان ما گرفتار این عشق مجازی میشوند بعد از اینکه گرفتار شدند طرف تمکین نمیده تا این جوان ما از دین منحرف نشه از مذهب خودش منحرف نشه از ارزشهای اخلاقیش منحرف نشود و اینو شاید همه شما مثالایشو دیدید، شنیدید نیاز نیست که این دیگه بیشتر باز بشود آقلان را اشاره کافیست عشق مجازی نه مسلحت دین است، نه مصلحت دنیا است. انسان آقل، انسان آقل اونیکه که دوم به مصلحت مس... خودش میاندیشد مسلحت دین و مسلحت دنیا عقل ادراک این به ما میفهماند بعد از اینکه به ما فهماند قلب انسان اون عاطفه انسان احساسات انسان انسان و وادار میکنن به فعالیت لہذا از نظر اخلی این عشق مجازی نه مصلحت دین ماست نه مصلحت دنیای ماست انسان وقتی مشغول بشه به عشق مجازی به حب مخلوق به عشق حرام در نتیجه این محروم میشه از عشق الله سبحانه و تعالی زیرا این دو عشق زده هم انجم ره شود. خلب انسان معذب است هر چیزی که غیر الله رو به جای الله دوست داشته باشه معذبه و این انسان اسیر همین عشق مجازی هست به مثل این است که یک ای رو گنجشکی را کسی دیگه تو دست داره لحظه با آن بازی می کند. این آدمی که گرفتار عشق مجازی هست این اسیر عشق مجازی است، اسیر اون معشوق هست که او رو با اون بازی میکنند. انسانی که گرفتار این عشق مجازی هست به مصلحت دنیایش نمی رسد تو درس و تعلیمش و تحصیلات دانشگاهی، حوزوی، کاروبار دنیا تو همهش نقص میاد زیرا مسلحت دنیا تابع مسلحت دین است. دین که خراب شد دنیای آدم هم خراب می شود وقتی این عشق مجازی به دل آدم بنشیند در نتیجه آدم گرفتار و می شود دیوانه می شود دیوانه مجنون و لیلی مجنون چرا مجنون شد؟ مجنون از عشق لیلی مجنون شد همین عشق مجازی بود که او رو گمراه کرد و این عشق مجازی حواس آدم و هم فاسد می کند هم از نظر معنوی و هم از نظر حسی از نظر معنوی این که حواس آدم تابع قلبان در عشق مجازی وقتی قلب انسان خراب می شود حواس هم خراب می شوند. و همچنین این با عشق مجازی حواس آدم هم خراب می شوند. جوانی که گرفتار عشق مجازی است، بیمار می شود، رنجور می شود. قصه کنیزک و ما خواندیم از مولانا کلندر استاد مصنوی که کنیزک عاشق بود چقدر رنجور شد. پادشاه طبیبان و آورد که علاج بکند علاج نشد. آخر بیچاره عاشق بود. حضرت عبدالله ابن عباس رضایی الله عنه یک جوانی رو دید خیلی رنجور پریشان زردست و گرفتار هست گفت چه شده است گفتند که این بیماری عشق دارد ابن عباس وقتی دید که این بیماری اینقدر خطرناکه از اون بود تو دعاهایش میگفت الله منو از عشق به تو پناه میبرم از عشق به تو پناه میبرم آفات عشق خیلی زیادند آدم و به فحشا میکشاند آدم و به کفر میکشاند گاهی عاشق به معشوقش نمیرسه دنبال ساهراست پسر دنبال صاهر است دختر عاشق از دنبال صاهراست ظلم میشه در این زمینه خیانت میشه به قوم به رشتهدار به خمسایه این همه آفات و بلیات اشک مجازی هستند. الان در غرب همین است این مهاجرین که از افغانستان میرن اروپا نقشه دشمن همین است اینا رو مبتلا میکند به عشق مجازی بعد که عاشق بشوند بعد طرف مقابل میگه تا مسیحی نشوی من با تو کنار نمیایم طرف هم مسیحی میشود یوسف علیه السلام عشق حقیقی داشت محبت الله سبحانه و تعالی در قلبش جاگیر بود لحاظا با این همه انگیزه ها و این عشق شدید ولی کوچکترین تمایلی نشان نداد الله سبحانه و تعالی می فرماید انه من یتقی و یصبر فان الله لا یضيع اجر المحسنين چه کسی گمان میکند که یک آدمی که طفلی که به صورت برده از شام در مصر فروخته میشه در آینده مصر این همه کاره میشود؟ کسی که اهل مصر نیست مصری نیست زبانش مصری نیست و جایگاهش در مصر برده است اون چنان جایگاه اجتماعی نداره به عنوان برده شناخته می شود ولی در نتیجه پایداری بردین در نتیجه عشق حقیقی و در نتیجه خوف الله تعالی او همه کاره مصر شد. پادشاه مصر یوسف عليه و وزیر کرد. وزیر اقتصاد است. و گفت ای یوسف اسم من پادشاه هست همه کاره مصر تو هستی. مصر رو اداره بکن. الله می فرماید نهُ من یتّخیواست بیر. این قانون، این امتیاز، این شرف، فقط مخصوص یوسف نیست این قانون کلی است عمومی است انه من یتقی و یصبر هر کس از الله شرم کند پروا کند و يسبر. بر شرم از الله پایدار بماند فَإِنَّ الله لا یضيع اجر المحسنين این انسان محسن است الله اجرشو را نمی کند به او حیات طیبه میدهد در این دنیا و در آن دنیا حیات طیبه چه هست حیات طیبه این است که اگر نان خشک هم بخورد سکون دارد آرامش دارد حیات طیبه اینه که دنبال حلال است حلال طیبه توفیق عبادات است الله بندگی میکنه این حیات طیبه هست عشق پاک عشق به همسر هست که مفتی و مرزهی قبلا تو این زمینه صحبت فرمود این عشق به همسر عشق زن به مرد و مرد به زن این عشق پاک هست و من آیاته خلق لکم من انفسکم از باجن لتسکنو ایلیها و جعل بینکم مودت و رحمه بین مرد و زن به برکت نکاح عشق پاک به وجود می آید مودت و رحمت مودت یعنی عاشق یک دیگر می شوند مهربان و دلسوز بر یک دیگر می شوند در مشکلات این عشق پاک است ولی در عشق مجازی این چیزا نیست عشقه هایی رنگ و بو بود عشق نبود آقابت ننگی بود عشق آن زنده گذین کو باقی است و از شراب جان فزای ساقی است این اشک حلال اشک پاک این سنت پیانبر صلی الله علیہ وسلم است آن حضرت فرمود حب به من دنیا کم ان و طیب که من از دنیای شما دو چیز دو دارم یک محبت همسر است و دیگر محبت خوشبوی است و جعلت قرره عینی فی الصلات اما اصل عشق عشق به عبادت خداست خوشی خونکی چشم در عبادت پروردگار تو نماز است یهود بر پیامبر صلی الله علیه و سلام حسادت می‌ورزیدند می‌گفتند این پیامبر شما همایش هم غمیش نکاح است فکرش تو نکاح است الان هم جهان کفر همینو میگوید الله پاسخ میدهد، ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله همسر حلال همسر این فضل خداست چرا حسادت میکنید بر این فضل پروردگار از فیانبر صلی الله علیه و سلم سوال شد که یا رسول الله شما کی رو بیشتر دوست داری؟ فرمود آیشه رو این هست اشک حلال و اشک پاک نسبت به خدیجه فرمود اینی رزقت و حبه الله به من روزی داده است یعنی حب آیشه این رزق خدا هست عطیه الله سبحانه و تعالی هست. چه تعبیر زیبایی هست اینی رضقت و خبه ها محبت با منکوه این از کمال انسان هست ابن عباس رضی الله عنه می فرماید هذه ذهی الامه اکثرها نساءن بهترین این امت اونائین که بیشتر زن دارن و پیامبر صلی الله علیه و سلم شفاعت فرمود یک صحابی بود به نام بریره مقیس و بریره اینا زن و مرد بودن بریره که آزاد شد لحاظا جدا شد از شوهرش ولی شوهر عاشق بود بریره گفت بیا بند تو نکاح میکنیم نیت مغیث نیت پاکی بود میخواست عشقی که آدم رو به نکاح بکشاند خوبه شفاعت در این راستا خوب است آن حضرت این دختره رو گفت این مغیث عاشق تو هست باش نکاح بکن گفت یا رسول الله اگر تو دستور میدی که من این کار میکنم اگه سفارش است من این این شخصو نمیخوام لحاظ اشک به همسر این قربت است، این تاعت هست، این عبادت هست، ولی اشک مجازی، اشک به نامحرم اشک به نیت های غلط، این موجب ناراضی و خشم الله سبحانه و تعالی است. لعمرو کئنهم لفی سکرتهم یعمهون، وقتی که انسان از نظر پروردگار بیفتد مبتلا میشه به عشق بچه بازی مبتلا میشود و همین قوملوت علیه السلام به این مرض مبتلا شدند لعمرو که انهم لفی سکرتهم این یک نشه ای داره تو نشه بودند و این عشق آدم کور کور می کند. بصیرت قلبی رو از آدم میگیرد لفی سکرتی هم یع مهون بودند سرگردان بودند دوای این مرض اینه که ما از الله سبحانه و تعالی استغاثه بکنیم رجوع کنیم به الله سبحانه و تعالی آفات و بلیاتی که آس آسیبایی که این عشق دارد تو اینا باید بیندیشیم <تصفيق> الله سبحانه وتعالی برای هر بیماری دوایی فرستاده است حدیث است که هر بیماری دوایی دارد لحاظا اصل اینه که انسان چشمه رو حفاظت بکند دانشگاه درس می کند. تو کوچه و خیابان می رود. چشم و حفاظت بکند که این نگاه تیری از تیرای مسموم شیطان هست و دوم اینکه در حفاظت چشم بداند که فواید هست امتصال از امر الله سبحانه و تعالی است. و دیگه انسان خودشو حفاظت می از اینکه این تیر بش بخورد در نتیجه دل انسان اونس میکنه با به الله سبحانه وتعالی در نتیجه حفاظت چشم قلب انسان قوی می شود در قلب انسان نور می آید، نور الله سبحانه وتعالی می فرماید قل المؤمنین ی ابصارهم. ابساراهم رو پایین بکنند بعد جلوتر میفرماید الله و نور و سماوات. یعنی با حفاظت چشم نور حاصل می شود خلب روشن می شود به انسان فراستی خدا می دهد که با اون فراست انسان دیگه مسیر بارش روشن می شود امروز در حدیث خواندیم ترموزی که اتقو فراست المؤمن فانه ینظر بنور الله که شما از تیز فهمی دانایی مؤمن بترسید او اضافه از این ذکاوت فطری اون با نور ایمانی نگاه میکند لهذا از خیلی چیزا صحبت میکنه معنی نیست که غیبگوه هست او فراست دارد با حفاظت ششم قلب انسان قوی میشوند. بر ایمان ثابت میماند یثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا بر ایمان ثابت میماند راههای ورودی و حمله شیطان مسدود میشوند و خلب انسان فارغ میشه برای اینکه فکر بکنه در مسالح دنیایش مسلحت دینش تحصیلاتش دانشگاهش آرزوهای بلندی که دارن بنابراین اصل اشق اشق به الله سبحانه و تعالی است اصل محبت الله سبحانه و تعالی است چطور ما عاشق الله سبحانه و تعالی بیشیم محبت الله در خلب ما جا بگیرد انسان با سه چیز محبت داره یک جمال و دیگر احسان و دیگر کمال جوان عزیز هر زیبایی که شما در دنیا میبینید همه زیبایی ها از الله سبحانه و تعالی است لحاظا از زیبایی به خالق زیبایی برو زیباییا راهی هستند برای اینکه شما از اینا عبور بکنی پولی بسازی و به خالق زیباییا برسی اگر جمال و دوست داری طبعا هر انسانی زیبایا رو دوست دارد پس خالق زیبایا رو ما باید بیشتر دوست داشته باشیم اگر اینجا انسان هنرمندی شو به ما شما نشان بده نمایشگاه هنر باشد همه دوست داریم که این هنرمند کی است ما ببینیم زیارتش کنه. فطرتا انسان به کمال به قدرت ایمان داره تسلیم می شود. <تصفح> <تصفح> کسی قدرت دارد کمالات داره انسانا باش محبت می کنن. کمال مطلق مال الله سبحانه و عوضه قدرت مطلق مال الله سبحانه و تعالی است اوست که این جهان و مدیریت می رهبری می کند هو الحی القیوم تو اگر دوسی میکنی با فلان ارگان که این قدرت داره دوسی میکنی با فلان پادشاه، دوسی میکنی با فلان به خالق این قدرت ها محبت بکن که اصل قدرت از اوست انسان همیشه محسن خودشو دوست دارد محسن خودمو هر هر یکی از ما بنده احسان هستیم همه احسانات در واقع از الله سبحانه و تعالی است انسان از راه های مختلف از نعمت استفاده می کند ولی اصل همه نیمت ها از الله سبحانه و تعالی است. تفهیم این با یک مثالی واضح می شود. یک درخت بزرگی هست های خیلی زیاد داره. همه این شاخه ها به ما میوه می دند ولی در اصل همه میوه ها از اون تنه درختند. اون اصل هست. لهذا انسان نعمت استفاده میکنه از طریق پدر و مادر، از طریق کاموخیش، از طریق حکومت، از طریق کسب و کار، از طریق شغلی که دارد کارمند هست، از هر مسیری که نعمت به ما میرسد، در واقع اصل این نعمت از الله سبحانه اینا همه شاخه اند. باید نباید ما تنها شاخه ها رو ببینیم، ما اصل رو ببینیم. وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ الله اشاره به این اصل میکند و ما بكم من نعمه هر نوع نعمت شما دارید مادی معنوی ما کوچک بزرگ همه اینا از جانب الله سبحانه و تعالی هستند و ان تعدوا نعمت الله لا تحسوها ان الله لغفور رحیم محبت الله زمانی در دل ما می نشیند که ما این ها رو ارتباط بدیم با الله هرچی منو و شما استفاده می کنیم محصولات زبال آسمانی است، محصولات زمینی است. همه و همه اینا از جانب الله تعالی هستد سوره نحل اسم دومش سوره نعمت ها، سورت النعم مشتی از این نعمت ها رو الله تعالی در سوره نحل بیان می فرماید والانعام خلقها لكم و دفئ ومنافع ومنها تاكلون از جمله نیمت ها حیوانات حلال گوشتند در اینا برای شما وسایل گرمایشی هست از پشم و کورک و موی اینا وسایل گرمایشی خیمه و کت و فلان چیزا درست می شود و منافع او منافع دیگه هست لبنیات و منها تأكلون از گوشتشون میخورید. ولکم فیها جمال حین تریحون و حین تسرحون. چه جمالی دارد وقتی این رمه گل میره برای چراغ بعد شب بر میگردد. و تحمل اثقال بلد لم تکونوا بالغه إلا بشق الأنفس ان رَبُّكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وزینه وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ سواری آفریده است برای بشر این نعمت خداست و یخلق ما لا تعلمون الله سواری‌های درست میکنه که شما نمیدانید این ماشین هست خودروی سواری هواپیما هست قطار است اینا چیزا که ما ندانستیم، گذشتگان ندانستند، الله آفریده است اصل خالق این صنعت خدا هست هو الذي انزل من السماء ماء لكم منه شجرون فیه توسیمون باران میشه باران از کی است از جمهور اسلامی از امریکا هست از الله منه شراب بخشی از این آب می نوشیم فیه تو بخشی از آن آبیاری می کنیم یوم به الزرع والزیتون به درختار و خدا می با این آب همه میوجات می وجات از این آب هستند ان فی ذلک کل لقوم لقومین یتفکرون این نیاز تفکر دارد که این نعمت چقدر نیازهای ما رو الله دانسته است وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامره ان في ذلك لآیات لقوم يعقلون اگر شب نمیبو چیکار میکردید اگر کلا شب می بود روز نمی بود میکردیم و شمس و اگر این خورشید نمی بود، ماه نمی بود و نجوم و مسخراتم به این تمام نجوم، ستاره، سیاره، کهکشان همه در کنترل الله سبحانه و تعالی هستند یقین در اینها نشانه های کلانی هست برای انسانهایی که عقل دارند. و ما ذرع لکم فی الارض مختلیفاً ان فی ذلك الايه لقوم يذكرون کلا هر الله در زمین آفریده است رنگا رنگا مختلفا از گیاه و نبات و درخت و میوه و زمین و نگاه کن و فی الارض قطع اون متجاورات زمین متفاوتن خاصیتایشون شکلایشون عناصرشون این همه نعمت پروردگارند لہذا هر نعمتی که استفاده میکنید میبینید ارتباطش بده به الله تعالی این ذکر قلبی هست ذکر قلبی پروردگار اینه که من آب تناول میکنم این چه مایه پاکی هست صافی بی رنگ و بیبو از الله آفریده است مینوشم میگم الحمدلله این آب و آفریده الله تعالی حمام می رویم چرکایم و می شویم. اگر این آب نمی بود این میکروبا این ویروسها، اینا من می کشتن. با همین آب انسان استنجا میکنه کنه نعمت پروردهگار هست ما اتهور قرآن میگه ما نازل کردیم تا شما خودتون رو پاک بکنیم بر سفره غذا میشینیم نانو میبینیم گوشت میبینیم انواع خوراکی میبینیم همه این نعمت ها رو ارتباط بده به الله تالا اون موقع محبت الله در دل جایگیر می شود وقتی که اوم خدا رو بهش آدم شناخت آن کس که تو را شناخت جان را چه کند فرزند و ایال و خانمان رو چه کند او دیگه فقط خدافرست می شود او مادیات پرست نمی شود فلان پرست نمی شه فلان پرست نمی شه. مادیات پرستی دیگهش مظاهر مختلفی داره گاهی انسان بت می پرستد این هم به خاطر مادیات هست دورنگی میکنه کنه به خاطر مادیات مادیات پرست این آدم و به ظالمان مرتبط میشه این هم به خاطر همین هست حل همه مشکلات اینه که در محبت الله سبحانه و تعالی کوتاهی است. داروی اصلی محبت الله سبحانه و تعالی است. وقتی محبت الله در قلوب صحابه نشست قدرت شدند، متحد شدند. انما المؤمنون اخوه وقتی حب الله باشه این اخوت هست کون و عباد الله اخوانا فیانبر صلی الله علیه سلام فرمود ولی اگر بجای حب الله حب مادیات باشد حب جاه باشد حب فلان باشد اشک مجازی باشد در نتیجه افتراخ می اختلاف میآید و اینها امت و نابود میکنند لذا بیاییم همه ما حب الله رو بر حب هر چیز سرجیح بدهیم و هر نعمتی که استفاده میکنیم اون نعمت رو ارتباط بدیم به خالق اون نعمت در نتیجه ما دوستدار الله میشیم قبل از اینکه ما با الله محبت بکنیم الله با ما محبت میکند این بالاترین شرف است که پیش از اینکه ما دوستدار الله بشیم الله با ما محبت میکند این عشق دو طرفه است فصوف یات الله و یحبهم ویحبونه اول الله دوستی میکند بعد بندگان دوستی می کند لحاظ چه شرف است؟ بالاترین شرف اینه که الله ما رو دوست بدارد و یقین کنیم که الله سبحانه و تعالی من و شما رو دوست دارد اگر الله دوست نمی داشت من و تو تو مسجد نبودیم نماز نمی کندیم. این نشانه حب الله با ایش است علام قشری صوفی بزرگواری است دور رسالت القشریه قصه آورده است که یک کنیزی بود شب دعا کرد اللهم اني اسألوک اللهم اینی اسألوک به حبک لی ان تغفر لی ای الله از آن جایی که تو منو دوست داری منو ببخش او صاحبش این صدای مناجات این کنیزک رو شنید گفت کنیزک چرا بر خدا می کنی بگو ای خدا من تو رو دوست دارم بی دوستی که با تو دارم منو ببخش کنیزک گفت که آقا اگر الله منو دوست نمی داشت منو در شکم شب بیدار نمی کرد. توفیق طاعت و بندگی نمیداد. خدا منو دوست داره. امام محمد شیبانی شاگرد امام ابو است. شاگردان این بزرگوار رو خواب دیدند، گفتند الله با تو چطور معامله کرد؟ گفت من خیلی پریشان بودم. خیلی پریشان بودم که معامله من چی می شود؟ الله به من گفت که ای محمد اگر ما تو رو دوست نمی اگر با تو اراده خیر نمی داشتیم به تو علم دین انایت نمی یا رب یا مولا یا حیو یا خیوم محبت خودت و عشق خود تو در قلوب ما جایگیر بکن وقتی قلب ما پر از محبت الله بشود این انقلاب میاره در شخص، انقلاب میاره در جامعه، انقلاب میاره در کشورها. به همین مقدار اختفا می کنم، از جسارت عذرخواهی می کنم. سبحان ربکا رب العزت اما یصفون و سلامون علی المرسلین و الحمدللہ رب العالمین.